خدمت شما عرض شود یکی دیگه از مسائلی که ما مشاهده می کنیم مسئله مسخه که در واقع آن چیزی که از آیات برمیاد بر اینه که های پیشین یه ده از این افراد در واقع به مسخ گرفتار شدن یه ده از اون طبحکارانشون به شکل خوک و میمون اینها در واقع در اومدن اینجاست که در واقع این سوال پیش میاد که نفس اونها که از بدنشون جدا شده و به بدن این حیوانات ها تعلق گرفته در واقع این تناسخ نیست مثلا شما آیه شستون سوره ماعده رو مشاهده بفرمایید آیه میفرماید عوض بالله من الشیطان الرجیم بلحل اونبی اکم به شر من ذالکه مسوبتن اندالله من الله و به علیه و جعل من همون قردت و الخنازیر و عبدت تاغوت اولائه که شرون مکانم و ادلون سواء سبیل شما اینجا میبینید که دقیقا از جعل منهم همون قردت و الخنازیر در واقع اشاره شده یده ید در واقع شکل میمون و آتشی شدن خوک در اومدن یا توایه 166 سوره اعراف که دیگه بیشترین تفصیل رو ما اینجا داریم دیگه فلام ما اتو اما نو ان قل له كونوا قراتن خاصه این. شما بازم در آیات قرآن می‌بینید این جدا از مواردی که ایشون اشاره کرده هست دیگه مثلا شما آیات 65 و 66 از سوره مبارکه بقره رو که می‌رید مشاهده می‌کنید اونجا مفصل‌تر بحث شده دیگه خدمت شما عرض شود تفصیل این آیات بیشتر هست که می‌فرماید ولقد علمتم الذين اتدا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرادة خاصین فجعلناها نكالا لما بين يديها و خلفها و للمتقين للمتغین خوب اینها در حقیقت به شکل میمونهای پس در اومدن چیزی که از آیات برمیاد خب نکته ای رایشون مطرح میکنه حالا پاسخ میخواه بده به این اشکالی که اینجا هست یعنی که بگیم اوقات این مسخ تناسخ هست یا نیست خدمت شما عرض شود که ما اینجا میشد بیشترم بحث کردون چون بحث بحث جدی هست ببینید من پیشا پیش قبل از اینکه وارد این بحث بشم این نکته رو اشاره کنم که ببینید مسخ در واقع جدا از اون معنای لغویش که همون به معنی اینیه که چیزی به چیز دیگه در واقع برگردانده بشه یا تبدیل بشه مینامند در لغت البته یه شرطی رو میگن به شرط اون که صورت یا شیء پدید آمده در واقع زشتر و بدتر از صورت اولی باشد ببینید در مسخ در لغت اینو میگن و همین خاطر شما بیشتر لغت شناس که مسخ رو تحویل صورت به صورت زشتر و پستر در واقع معنا کردن پستر از اون اولیه شما برید توی ال این و مقایس و و در واقع انهای ابن اسیر و لسان العرب و این کتابا برید نگاه کنید حالا تو اسطلاح من اینها خب میخوام بهتون بگم تو اسطلاح ما با سن و سر کار داریم وقتی شما میرید در دیدگاه اندیش منان ما رو مشاهده می کنید. این اینها صحبت, صحبت ها این اومده که یه نوع مسخ مسخ در واقع ملکی و ظاهریست اینه که در حقیقت تو این نوع مسخ صرفا در واقع تغییر صورت مادی با بقای انسانیست رخ میده که در واقع ما اینجا میگیم دلیل عقلی هم بر محالش نیست یعنی شما صورت همون که انسان بوده به شکل میمون نر اومده البته به شکل با بقای انسان یعنی آدم درک درک و شعور انسانی رو دارد اگه درک و شعورش در حد میمون باشه که این چه عذابی شد درسته؟ چون که شما باید دقت کنید مسخ خدمت شما عرض شود که از سنت های معاخزه و اقاب حق تعالی است که بر اساس اونها عالم تکمین داره میشه گای اوقات در پی انحرافات اخلاقی و تغیانگری ها و عبور انسان ها از خطوط مشخص الهی توسط پیامبران بوده که این رخ داده که شما این اگر این آیات رو برید مرور کنید به این می رسید که آیات 65 و 66 سوره مبارک بقره شما دلیل نقلی برای ما هستی ببینید ما تو علوم مادی هم اثبات رسیده که بدن مادی با همه ذرات و سلول هاشون در هر چند سال تبدیل پیدا میشن دیگه در اینه که بدن کنونی چه همون بدن قبلیه پس این تغییر به لحاظ تجربه میشه اثبات کرد یه نوع مسخ دیگه در واقع نسخ ملکوتی یا درونیه اینه که ما از درونمونیه در از انسان ها تو عالم طبیعت در واقع به بیراهه میرن خلاف صراط مستقیم حرکت میکنن انتخاب این مسیر در واقع زمینه پیدایش یه ملکه از از ملکات, ملکات نفسانی برای آدمی میشه که انسان به تدریج در واقع این کمالات نفسانی در واقع تو روح جانش رسوخ رو میکنه و در واقع یه نوع روح متحد و صورتی برای نفسش میشه حالا خواه در واقع این صورته با فطرت اولیهش سازگار باشه یا نباشه مثلا اینکه به شکل بوزینه در واقع کونو و قردتا این که میگه به شکل میمون نرومدن به همین ناظر هست یعنی که هرچند شکل ظاهری انسان تبهکار که در واقع آرز بر حقیقت و روحش هست خدمت شما یه شکل انسانیه اما در واقع نفس مجردش که واقعیت اون را تشکیل میده بوزینه هست ببینید یک ده از مفسران ما به این نکته اشاره کردن علمای ما نفس مجرد اون حقیقت وجودی ما رو تشکیل میده این نفس مجرده به چه شکل است چون واقعیت واقعیتی که آشکار می شود این نفس مجرده دیگر. از خواب سبط این بلا سرشون اومد شما برای همینه که توی روایت تفسیری از پیامبر اکرم دارین که پیامبر فرمودن که 10 گروه از امت من به صورت‌های مشهور میشوند که خداوند در واقع اونها را از سایر مسلمانان جدا کرده این اتفاق در واقع برای امومت اسلام هم یک گروه شاید رخ بدهد طبق این روایته. یه نمونه دیگه از نس در واقع مسخ انحراف از هدف اصلیه که خدمت شما عرض شود که گاهی اوقات ما داریم یک مسیر رو میریم یه تغییر محرفانه‌ای در واقع صورت بگیره که در واقع ما رو از اون هدف اصلی دور کنه تبدیل انسان در واقع به جماداتی مثل سنگ رو در واقع از این نوع سنگ گفتن از اون هدف اصلی در واقع دور شده در واقع تحول یک شیه به شیه دیگر قرار بود تکامل پیدا کنه تکامل پیدا نکرده برای همین از هدف اصلی دور شده است ببینید جدا از این آیاتی که شما میرید مشاهده میکنید که ما بهتون گفتیم اه... که خدمت شما عرض شود همون آیه پنج و پنج و, و ششمه سوری بغیره آیه سده و شست و و خدمت شما عرض بازم شما میرید توی قرآن کریم میبینید که بحث آیه هفت و دهشتمه سوری مائده هم هست اینا رو ما بر مسق ظاهری میگیریم مسق باطنی متاسفانه متاسفانه بین خیلی از ماها چیست رایج هست اینه که شما مشاهده میکنید که عقوبت در واقع داره این مختلف هست این در واقع دلیل تفاوت این سنت عقوبت متناسب با جرم و, جرم و جنایت هستیه عقوبت در واقع یه عده در واقع مسق باطنی اونهاست مسق باطنی مثلا مطرح میشه حالا با این حال ما تو آیات مختلف این سنت در واقع عقوبت اشاره شده که بعض از علمای ما مثلا شما برید نگاه کنید آیت الله جوادی توی تفسیر تسنیم اشاره میکنه میگه آقا ما تعابیر مثلا تبع کذالک نتبعوا علی قلوب المعتدین یا ختم ختم الله علی قلوبهم میگه اینا هم بیانگر مسخ باطنیه تبع در واقع اینه که طبق قلب بعد از تحقق کفر و تکبر به خدا صورت می گیره ختمم در مقابل فتح به معنای کامل کردن یا رسیدن به پایان هست اینجا هست که صحیفه جان آدمی نیز یه شک میشه که راه توبه رو بر خودش می‌بنده. ما باز تحبیر صرف داریم سممن صرف و صرف الله قلوبهم هم روی گردانی از حق دیگه به صورت اختیار یا بسه غلاف،, غلاف رو داریم و قال قلوب قلوب ونالف و قولهم قلوب ونا غلف بل تبع الله علی ها به کفرهم غلف قلف هم ایننه که بر قلب های یهودییان طبقه آاطتی این شکلی است. یه تعبیر کنان داریم و جناله قلوب هم اکن نتن یافقه او یعنی این موقع این تحول باتی در انسان به شکلی می شود که انسان از در که معرفتی میشه محروم می شود یا رین رو داریم زنگار دل کلا بل ران علا غروبه. این که بس دیگر دیستی درونی انسان های که هست. اینجا هست دیگه یا بس قفل رو داریم هم قلوب غلوب ها یا بس اخفال رو داریم بلا توتع من اقفلنا به هو انذکرنا یا ما بس تقلیب رو داریم من قلب و افعدته هم و افساره هم از شما ببینید این تعابیر ای طلاع توی جل پنجم تسلیم صفحه 445 میگن میگن آقا این که ما گفتیم خدمت شما عرصه یک نوع مواردی است برای هدایت ناپذیری و بسته بودن دلهای کافران و معاندان هست افرادی که رحمت حق تعالی را در واقع پینه میگیرن راه اسیان را پیش میگیرن پافشاریان میکنن در واقع این خدمت شما شود که مسخ باطنی رخ میده این موارد رو پس ما بهش دقت کنیم اون موقع خودمون میتونیم در مورد مسخ درست صحبت کنیم با توجه به این نکتهایی که ما گفتیم اون موقع ما میتونیم مسخ رو دقیق تر کنیم خب حالا خدمت شما شود شد که ایشون یه پاسخی میدهت که این رو ما پاسخ راهام یک جورایی یعنی تو مقدمات پیشیم بود یشو میگه همون گونه که یادآور شدیم اساس تناسخ رو دو تا چیز تشکیل میده اساس تناسخ رو دو چیز تشکیل میده یکی وجود دو تا بدن هست و دیگری واپسگرایی نفس منظور از وجود دو بدن اینه که که گفتیم نگه بدنی که روح و نفس از اون منسلخ و مفارق بشه و بدنی که روح پس از اون در واقع جدایی بهش تلاغ بگیره که این مشخصه واپسگرایی هم در واقع انهتات از کمال پیشین به درجه پستره دیگه گفتم ویژگی خدمت شما عرض شد مطلبی که ما گفتیم ویژگی مسقیم بود دیگه وقتی این اتفاق رخ میدهد این عذابه میشه انسان به یک صورت در واقع پستره صورت خدمت شما عرض شد پیشین خودش در واقع منتقل میشه تبدیل میشه الان ما دوران مس گفتیم تو تناسخ هم یه نکته‌ای که هست تو تناسخ میگه موجودی که به کمال رسیده شما ببینید به فعلیت رسیده حالا میخواد بره تو جنین بره یا در قالب چی بره نبات بره یا در قالب حیوان بره یعنی کماله رو یا باید از بین ببریم یا باید بیا منتقل بشه دیگه یعنی چیزی که بالفعل بوده باید بالقوه بشه و چیزی که کامل بوده ناقص شه یه واپسگرای دیگه به تعبیر باز از انیش مانانمایی میشه دگردیسی بین میگن دگردیسی خبیشون میگه تعدد بدن حالایشون اینجا مطرح میکنه واسه مسخ توی مسخ آیا تعدد بدن صورت میگیره خیر چون که فرض که همون انسان های توقیانگر به فرمان خدا به شکل میمون خوک در بیان درسته تعدد بدن که نیست که یه بدن که بیش نیست شکل ظاهریشون به شکل میمون یا چیه خوک در میاد انهتات در واقع حالا میمونه واپسگرایی که گفتیم واپسگرایی ما گفتیم از کمال و نقص میرسه حالا میخوام میبینم انهتات و واپسگرایی تو مسخ هست ایشون میگه خیر اینم منتفیه چون هدف از عمل مسخ چی بود دادن در واقع گروه تبهکار بود دیگه چیزی که من به شما گفتم سنت مواخذه هست دیگه خب اگر نفس نفس افرادی که مسخ شدن از مقام انسانی به مقام حیوانی تن از کرد درکشون هم در حد حیوانی بود کیفر اصلا منتفی می شد خدا چرا اومد از خواب سبت رو افرادی که در واقع اومدن حریم شکنی کردن روز شنبه قرار بود ماهیگیری نکنن ماهی کردن و اتفاقاتی که افتاد خدا می خواد در واقع اینها با درکی که دارن درک انسانی که دارن شکلشون رو به شکل حیوان و در واقع اینجا میمون خوک به شکل کریه ترین شکل داره در میاره این وقتی این شعورش هم در حد حیوان باشه حالا این را در حد حیوان مرارداد اصلا قصه که نمیخوره این دیگه عذاب نمیشه که عذاب در صورت است که چیه؟ این بدانت انسان هست اما شکل شکل چیه؟ میمونه شکل خوکه درسته؟ شعور انسانی را دارن و همه خاطر وقتی شما میبینید خداوند می فرمید الله و نکالن لما بین يديها ها و ما ها و موعظتن للمتقین خدا بس کیفر رو داره مطرح میکنه بسه نکال, نکال رو مطرح میکنه یه عبرتی برای پنگیران باشه این بحث موعظه و عبرت و اینهای که میگه این حالت تا روانی رو میگه دیگه من اینها درک داشته باشن همون موقع زمان خودشون تا زمانهای بعدی این در واقع مایه عبرت باشن پس واقعیت مسخ اینه که آنها با داشتن مقام انسانی در واقع به شکل میمون نروان آمدند نه در واقع دو بدن داشتن و نه در واقع واپسگرای نفس صورت گرفت خب حالا یه اشکالی که وحابی و حالا سلفی ها در واقع به شیعه میگیرن بس ار آیات رجعت هست که شما دیگه آموزه رجعت را همه تو میدونید دیگه که آقا ما داریم که قبل, از این که قبل از این که قیامت بشود در واقع اینگونه می شود که یکی از علایمی که مطرح میشه اینه که گروه از طبحکاران و در مقابل گروهی از مؤمنان در واقع به دنیا بر میگرده و خدمت شما عرض شود اینجا اون مؤمنان و اولیاء الهی از اون طبحکاران انتقام می گیرند که اینجا ما بس حسین را عیمه رو داریم و مؤمنان در واقع میان اینجا مؤمنانی که تو مرتبه والا هستن رجعت ما الى ماشاءالله تو این زمین روایت داریم بعض از آیات ما هم به این نکته ناظر هست خب حالا بحث آموزه رجعتی که اینجا مطرح شد خدمت شما هر شود که اومدن این اشکال را گرفتن گفتن که آقا بازگشت این گروهی که شما میگید خدمت شما هر شد که اینه که روح اونها بار دیگه این روح آدم های یا توکر بار دیگه به بدن اونها بدن دنیاویشون تعلق،, تعلق بگیره آیا این در واقع تعدد نیست تعدد دو بدن نیست این بدنی که دیگه وجود نداشته که بدنی که مردکه از بین رفته درسته این میشود تناسخ اومدن شکالی که بر شیعه گرفتن اینه ایشون پاسخی که میدهد اینه که آقا بازگشت حالا مؤمنان یا تبهکاران به این در واقع به حیات دنیوی پیش از معاد پیش از اینکه قیامت کبراه بشود با احیای مردگان به وسیله حضرت عیسی متفاوت ندار حضرت عیسیا وقتی ای از دنیا میرفت چه میشد یکی از معجزات بود که یه ذره ذنّه کرد دیگه آیا اون موقع هم کسی گفتن این تناسخه گفتن معجزه و کرامت هستیگه خب شما این اتفاق رو من از قبیله در شماره در اداده در واقع چی بدونید معجزات بدونید الطاف حق تعالی بدونید اینه طالب و بدن به دمل به کربلا. شما مواردی که میبینید همین دیگه موارد الا ما شوالله تو این زمینه داریم رجعت و بازگشت به بدن تو دنیا در واقع تو این رجعته هرگز نفس فعلیتهای خودش رو در واقع از دست نمیده و به صورت تنظل یافته و تعلق بدن پیدا نمیکنه، بس واپسگرایی مطرح نمی شه فعلیت هاش در واقع از بین نمی روید کمالاتی که داشته منظور حالا کماله مثلا شما اون کفار رو اینا می کمال حیوانی رو داشتن شما می بینید اینا کمال حیوانشون همون شهوت و قذب رو داشتن از این بر اینها اولیا الهی ما تو مرتبه والای کمال اقلانی. قوه عقل عملی و نظری نظری هستند. اینجا که چیز نمیشه این کمال از دست نمیره که بلکه با همون فعلیت هایی که تو زمینه سعادت یا شقاوتی نفراد دارن یک بار دیگه به در واقع به بدن دنیاوی تعلق تدبیری پیدا میکنن نفسشون در واقع به این بدنشون در واقع تعلق تدبیری پیدا میکنن این اصلا به معنای تناسخ نیست اینه که شما می‌بینید احمد امین یا یه سری از افراد دیگه اومدن اشکال گرفتن اینها انات هایی که این افراد دارن یعنی شما اولا شواهد دیگه رو میتونید پاسخ بدید بعد دلیل عقلی رو با بیاد مطرح کنید وقتی با اشکال گرفت که بحث وجود دو بدن و واپسگرایی نفس مطرح شود که این منتفی است یه نکته دیگه هم که ایشون تو صفحه 207 اشاره می کنن بحث سنت الهی و بازگشت انسان به این دنیا ایشون میگی که قرآن کریم در موارد از احیای مردگان و بازگشت نفوس در واقع پس از مفارقت از بدن به این دنیا گزارش می کند که ایدارا شما تو پاورقی مشاهده کنید من خواهش می کنم آیات رو برید یک بار دیگه بخونید زنده شدن پرندگان توسط حضرت ابراهیم زنده شدن او نبی یا در واقع اون علاقش مقتولی از بنی اسرائیل احیای مردگان توسط حضرت ایسا زن شدن هفتاد نفر از قوم بنی اسرائیل و زن شدن گروهی از بنی اسرائیل بعد از مرگ اونها به انگام مسافرت خب حالا یه سوالی که مطرح میشه اینه که آیا بازگشت روح اینها به بدنشون تو این دنیا از نظر سنت حق تالا چه شکلیه باید ایشون پاسخی که میدهد اینه که سنت حق تالا، پیرامونه. حیات و مرگ انسان اینه که بعد از انتقال انسان و عالم برزخ دیگه این چیه به دنیا بر نگ... نمیگرده. البته ما موارد استثنایی چیه داریم مثل احیا مردگان توسط حضرت ایسای رجعت یا یه مواردی که الان ما گفتیم سنت معلومه چی هست؟ درسته؟ سنت مشخصه تا اینها موارد مواردی هست که اینها در واقع به دست حق تعالی مشیت حق تعالی روخ میدهند اگر شما میخواید زیر سوال ببرید این آیات قرآن زیر سوال میره درسته؟ یعنی همون جور که بحث مطرح شده که آدم ها وقتی مردن بر نمیگردن در این حال ما یک موارد جزئی و استثنائی هم داریم اگر نخواییم بپذینیم این تواتر از بین میرود خب امیدوارم که مطالبمون سودمند بوده باشه حت تل امکان من سعی کردم تا اونجایی که میتونم زیاد توضیح بدم که مطالب آشکار شود برحال چون کلاس حضوری نیست ما سعی میکنیم زیاد توضیح بدیم حالا من تقاضا دارم شما هم دقیق بخونید هم فایل ها رو هم با دقت گوش بدید هر گونه نقصی در کلام بن نبوده مالا برحال خودتون میدونید انسان خسته میشه دیگه ما دو سه برابر این فایلی که برای شما میفرستیم داریم وقت میذاریم به با بزرگواری خودتون ببخشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکات